آن شب بد خوابیدم. به سگی فکر می کردم که از گذشته بیرون آمده و دوباره محو شده بود. صبح رویه خوبی داشتم. مطمئن بودم دیگر نه من و نه سگ. هیچ کدام در معرض هیچ خطری نیستیم و دیگر هیچ اتومبیلی نمی تواند به ما بزند. تازه ساعت هفت بود. یکی از کافه های خیابان ساحلی پاس بود. همانی که را رانچا دیده بودم این بار دفترچه کهنه آدرس های پدرم را توی جیب کتم گذاشته بودم همیشه چیزی توی جیب هایم می گذاشتم کتاب شگفتی های آسمان یا نقشه لوار شهر پشت یکی از میزهای نزدیک به در شیشه ای نشستم آنجا آن طرف پل قطارهای مترو یکی پس از دیگری ناپدید میشدند. دفترچه را ورق زدم. اسمها با رنگهای مختلف نوشته شده بودند. آبی، مشکی، بنفش. اسمهای بنفش با دقت نوشته شده بودند و به نظر میآمد از همه قدیمی ترند. چند تا از آنها خط خورده بودند. در کمال تعجب دیدم، آدرس تعداد زیادی از اسمها، خیابان های محله است که الان آنجا بودم از روی دفتر چه نوشتم؟ ایوان شاپوشینکوف یک خیابان پلدومر کلبر هفتاد و دو وازن بیست خیابان رانوار ژاسمن سی نیک دومورگلی چهارده میدان آلبانی تروکدرو شست و پنج هشتاد و یک تو دیورنر 28 خیابان شفرپاسی 90 90 ماری چرنیشوف 30 ساحل پاسیژاسمن 64 76 دوباره سی ساحل پاسی الکسی متافلو اوتوی 70 66 از روی کنجکاوی بعد از ظهر سراغ بعضی از این آدرس ها رفتم همگی نمای روشن درهای شیشه و ترازهای بزرگ داشتند، درست مثل شماره چهار خیابان آلبرت دومون. فکر میکنم راجع به این ساختمان ها بود که میگفتند امکانات مدرن دارند و از ویژگی دیگری هم برخوردارند. شفاجه زمینی بدون پارکت، کففوش سنگ مرمر، درهای کشویی و احساس زندگی توی کشتی ساکن وسط دریا. پشت این تجمل چشمگیر هیچ چیز وجود نداشت می دانستم پدرم دوران جوانیش در چنین ساختمانهایی زندگی می کرد و کرایه هم نمی داد برق اتاقهای خالی در زمستان غد بود جزان دست مسافرهایی به حساب می آمد که با آهنگ تندی تغییر می کنند. هرگز در جایی ثابت نمی مانند و پشت سر هیچ ردی از خودشان جا نمیگذارند. بله آدم هایی که بعدها به سختی می شود وجودشان را اثبات کرد جمع کردن جزئیات دقیقی مثل شماره تلفن ها و یادداشت های خصوصی هم بیفایده است برای همین بود که آن شب در خیابان آلبردمون کمی ناامید شدم اگر از در اصلی ساختمان رد میشدم کسی را پیدا نمی کردم. همین جلوم را گرفته بود نه ترس از اینکه مثل ولگرد ها با من برخورد شود جستجور را در خیابان‌های دنبال می‌کردم که همه چیزشان گل زننده بود این کار به نظرم بیهوده می‌آمد. درست مثل مهندسی که بخواهد دفتر ثبت عراضیش را توی بیابانی بی بیابا و علف تأسیس کند اما به خودم گفته بودم واقعا ارزه پیدا کردن یک زن به اسم شکلین بسرشان را نداری؟